قولی نیست راس ساعت 8:30 دقیقه حتما به رادیو استانبول گوش بدهید آن شب قهوخانه عاصم عموم در محله اوجایوسف از همیشه شلوغ‌تر علاوه بر مشتریهای دائمی قهوخانه کسانی هم که در خانهشان رادیو نداشتند و در روزنامه‌های آگهی برنامه فوق‌العاده رادیو را دیده بودند که با عبارت مجد مژده شروع می‌شد برای گوش دادن به رادیو در قهوه خانه جمع شده بود. بیرو برف شدیدی بودند. شیشه های پنجره که برگ های شمدانی و به گنیا پوشنده بودشان بخار گرفته بود. بخاری هیزامی مثل آهن گداخته سرخ شده بود. دود سیگار و قلیان در هم پیچیده بود. توی قهوه خانه از گرمای اجاق و, و نفس آدم ها و بخار قهوه حسابی گرم شده بود. آدم توی خانه خودش هم اینقدر احساس راحتی نمی کرد. با پانزده قروش هم یک قهوه بخور، هم تا نصف شب بنشین و از وضعیت دنیا گرفته تا اوضاع کشور و اتفاقات محله درباره همه چیز صحبت بکن. تازه استخانهات هم گرم می شود. با چقدر؟ با پانزده قروش ناقابل. کمی قبل، چون برنامه مجله رادیویی پخش می شد، آسم افندی پیچ رادیو را بسته بود. مصطفی افندی که توی موزابدارچی بود ساعتش را از جیبش درآورد بعد به ساعت گردا ویزان از چهارچوب به بخش شیشه ای که آبدارخانه را از سایر قسمت‌های های خانه جدا می کرد نگاهی انداخت و گفت آسم افندی، ساعت تو انگار داره خواب هفت پادشاه رو می بینه حالا این رادیو رو روشن کن ببینیم آسم افندی پیش رادیو را که روی کشوی پول ها بود و رویش یک تکه پارچه گلدوزی شده انداخته بودند چرخ. دان، شنوندگان عزیز، الان برنامه ویژهمان ویژه را آغاز می کنیم. یک دفعه صدای شطرق شطرق تخت نرد و خشقش کارت ها و دنگ دنگ دومینو ایستند. همه دوی قهوه خانه ساکت شدند و گوش خواباندند. حتی استعزیز مکانیک برای اینکه وسط برنامه صرفه نکند همه ی صرفه هایش را یک جا کرد. اکنون هنرمند ارجمند خاننده پرآوازه منیر نور کنسرت خود را شروع می کند اعضای ارکست عبارتند از ابتدا صدای کمانچه و اود و تنبور و قانون آمد پس از آن صدای لرزان و محزون شروع کرد به آواز خواندن. سر کویت از فغانم نیست آیا گلگله؟ قلقله قلقله نیست جمله قلقله نیست چند بار در چند جای آواز تکرار شد قلقله نیست؟ یونس افندی سرخدمتکار که در میان مشتری های قهوه خانه از همه بیشتر ساز مخالفت با دولت را میزد، فریاد زنان گفت. ای وای، دیدی چی شد؟ ببین مملکت رو به چه روزی انداختن؟ ببین چه وضعی شده که دیگه گلگله نمونده. آسم افندی که دستش را مثل شیپور جلو گوشش گرفته بود تا بهتر بشنود پرسید. چی میگه؟ چی میگه؟ چی چی نیست؟ قلقله، خب بگو دیگه بس قول غلام نمونده. یونس افندی سرخدمتکار که نمیخواست فرصت آورده برای ابراز مخالفت را از دست بدهد، این مدیر ادارهشان را گرفت و گفت. ببین چه بلایی سر مملکت آوردن. اگه قول غلام نباشه اون وقت تکلیفمون چیه؟ مصطفی افندی عبداد موزه؟ طوری که انگار همه میدانند و فقط اوست که نمیداند با خجالت از بغل لستیش پرسید این گلگله که میگن چیه؟ نمیدونم. اما چون تو رادیو هم فریاد میزنن که گلگله نیست پس حتما چیز ضروری باس باشه. گلگله نیست؟ صدقی افندی که از های پراپاگرس حزب حاکم بود گفت گمون نکنم. اگه چیز ضروری واسه ملت بود جناب نخست وزیر حتما دستور میدادن کارخونش رو بسازن. آسم افندی چی گفت این گلگله همون قلیونه معلومه که تو لغتنامه غریون رو می نویسن. عزیز مکانیک مثل آدم های عقل کلی که به نادانی دیگران می خندد خندید و گفت قلقله <تصفيق> از لوازم یدکی موتوره یه حلقه برنجی هست که میرگاردون رو به دفرانسیل وصل میکنه. به پیمی که سر اون حلقه هست میگن قلقله مصطفی افندی پرسید خیلی مهمه عزیز مکانیک راضی از اینکه موضوعی مربوط به تخصصش گیر آورده گفت البته که مهمه اگه قلقله نباشه موتور و هرچی ماشینه از کار میفته اگه قلقله نباشه تراموای کار نمیکنه اتومبیل کار نمیکنه اتوبوس کشلی قایق موتوری خلاصه هیچی کار نمیکنه مملکت نابود میشه ساخت داخلشو نداریم؟ نداریمقولغله رو تو دنیا فقط یه جا میساه اونم یه شهری تو آمریکا <تصفيق> خیلی خوب داداش آدم که نباید دردشو هوار بزنه آدمیزاد هر دردی که داره بایست تو خودش بریزه نباید که جار بزنه حالا قلقله نیست که نیست چه معنی داره تو رادیو فریاد بزنن قلقله نیست و آبروی مملکت رو تو کل دنیا ببرن اگه من بودم به خدا این رئیس رادیو رو دادگاهیش میکردم کاری میکردم از حزب اخراجش کنن بابا جان داد میزنیم قلقله نیست نیست تا شاید امریکایی بشنون و به امون بدن بچه که ار نزنه به شیر نمیدن خب رادیو هم که معلومه چهجور جور اینجا که داد بزنی تو آمریکا هم صداتو میشنفن اگه داد نزنی که گلگله نیست ترومن از کجا خبردار بشه که قلقله نمونده؟ آسم افندی این اشتباه را فورا تصحیح کرد اوه ترومن میدونی چند وقته رفته الان رزولت رئیس جمه دیروز تو روزنامه خوندم، آمریکا پنج میلیارد غرقاله به یونان داده. اون وقت به ما دیپلستا هم نمیدن. نخست وزیر ما هم شده گفته ما این همه کار بکنیم، خدمت بکنیم. اون وقت بهمون غرقاله ندین. اینکه واضح نمیشه. سلیم افندیه بازنشسته مهمات سازی که تا آن موقع ساکت نشسته بود گفت: "ای بابا شماها دارین اشتباه میکنین. این غرقاله که میگن از هندوستان وارد میشه. دوازی درد غلنجه. گلاب بروتون، واسه بی اختیاری ادرار و بعضی دردای زنونه عین آب رواتیشه، خیلی خوب افاقه میکنه سه روز صبح ناشتا با خاکشیر شیر قاطی میکنی و سر میکشی تموم درد و مرزات خوب میشه استاد تفنگساز چنان با اعتماد به نفس حرف میزد که عزیز مکانیک بدجوری توی ذوقش خورد در همان زمان رادیو داشت دیگر های ترانه را پخش میکرد تا بسته زنجیر پریشانت شوم عزیز مکانیک فوری از جایش برید ببینین گوش کنین میگه زنجیر چون زنجیر هم دیگه نیست مگه ممکنه قلقله دوا باشه آخه اینو باش میگه قلقله رو با خاک شیر قاطی میکنن و سر میکشن <تصفيق> ترانه هنوز ادامه داشت سر کویت از فقانم نیست آیا قلقله قلقله نیست. خب این رادیو مگه رادیوی دولت نیست؟ معلومه که رادیوی دولته مگه کسی دیگه هم رادیو داره؟ خب اگه اینجوره واسه چی میگه قلقله نیست؟ اولین باره که از رادیو میشنافن میگه یه چیزی نیست. ترانه دیگری شروع شده اما همه هنوز داشتن سر قلقله جر رو بحث کردند. اون دوره دیگه گذشت. الان دولت با مردم رو راست. اگه باشه میگه هست، اگه نباشه میگه نیست. ملتفت شدی؟ میگفتن قرار تو رادیو به مخالفه هم اجازه بدن صحبت بکنن. نکنه این یارو که داد میزنه قلقلوی نیست از مخالفا باشه. اگه مخالفم باشه مگه اجازه میدن اینجوری داد بزنه قلقله نیست تموم شده. پس چیه؟ این فکر کنم رادیوی دشمن باشه. الان رادیوهای بیگانه هم یه دفعه میپرن وسط. رادیو رو گوش میکنی گوش میکنی آخر سر میبینی یکی در اومد گفت اینجا رادیو فلانجاست. آقا این قلقله غلغوله... ینده رادیو گفت برنامه امشب به پایان رسید. شب بر همگی خوش. ره به خانه خالی شد. صدای قلغلله که در کوچه های تنگ و با باریک میگشت زیر برفی که در تاریکی شب میبره مفوم شد. قلقله می.